ایزد چون خواست آنچه من خواستم، که گردد راست، آنچه من خواستم، گر جمله سبابه است که او خواسته است، پس جمله خطاست آنچه من خواستم. انگام گل است اختیاری بکنم، وانگه به خلاف شر کاری بکنم، با سبز خطان و لاله رخ روزی چند، بر سبز زجره لال بکنم. تا زن نبری که من به خود موجودم یا این ره خونخاره به خود پیمودم این بود نبود من زبود او بود من خود که بودم کجا بودم کی بودم من بیمه ناب زیستن نتوانم وی بیباده کشید بارتن نتوانم من بنده آندمم که ساقی گوید یک جام دیگر بگیر و من نتوانم